عزیزان عیسی همیشه شریعت خدا رو قبل از اینکه در زندگی مردم به کار بگیره از محبت خدا عبور می داد. با سلام در نام خداوندمون عیسی مسیح به درس دیگری از ادامه موزه سرکو خوش اومدین معلم ما در درس امروز دیدگاه بزرگتری از شریعت خدا و محبت خدا به ما خواهد داد تا وقتی میخوایم کلام خدا رو در نگه دیگران به کار بگیریم از اون استفاده کنیم. حالا معلممون آماده است تا درس دیگری از معزه سرکور رو شروع کنه. با هم گوش میکنیم. فکر نکنید که من آمدهم تا تورات و نوشته های پیامبران رو منسوخ نمایم. نیامدهام آمدم تا منسوخ کنم بلکه تا به کمال برسانم. یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن تحقق یابد. پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین این تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی پسترین فرد محسوب خواهد شد. حالان که هرکس شریعت را رعایت کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمان بزرگ خانده خواهد شد. بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد متنی رو که شنیدید از متا 5 آیات 17 تا 20 براتون خوندم که امروز میخوایم درس جدیدی رو از اون قسمت در مورد سر کوه شروع کنیم. ما در درس های قبلی دیدیم که این معزه بالای کوه در واقع یک معزه نبود اون مثل یک گرده همایی بود هدف گردهمایی همایی و استراتژی گرده همایی از نظر خداوند ما به خدمت گرفتن نیروهایی به عنوان راه حل و پاسخ بود. در پایین کوه هزاران نفر از مردمی بودند که عیسی داشت خدمتشان میکرد. و از بین تمام اون جمعیت با تمام مشکلاتشون او شخصا اده خاصی را از بین شاگردان دعوت کرد که در سطح بالاتری به او ملحق شوند در ارتفاعات بالاتر کوه کنار دریای جلیل اونجا در بالای کوه او تعالیمی رو داد که در متا پنج شش و هفت ثبت شده است. هدف از تعالیمش همون چیزی بود که ما در آیاتی که در جلسه قبل نگاه کردیم دیدیم. آیات سیزده تا شانزده که اگه بفهمید عیسی اونجا چه تعلیمی میده اون وقت شما نمک روی زمین و نور جهان و مانند شهری هستید که بر بالای کوهی بنا شده و نمیشه اون رو مخفی کرد. شما مانند چراغی بر روی چراغ پایه خواهید بود. ایسا داشت راه حلها و جوابهایی برای تمام مشکلات اون انبوه جمعیت پای به خدمت می گرفت. ما هرگز نباید فراموش کنیم که اون تعالیم در اون زمینه و به عنوان بخشی از استراتژی بزرگ او داده شده. در خوشاب حالها که باب پنج با اونها شروع میشه در آیات سه تا ده ما این رفتارهای زیبا رو می بینیم که بسیاری از میگویند تعلیم هستند و بقیه اونها کاربرد هستند. خوشا به شاگردان رو به چالش میکشند که به درون نگاه کنند و حالا با شروع آیه 11 و تا آخر باب پنج از یک نظر عیسی داره میگه و اطراف نگاه کنید و بیایید این رفتارهای زیبا رو که من بهتون تعلیم دادم بپذیرید و بعد اونها رو در دنیای خودتون به کار بگیرید و بعد در کلام خدا و بعد در انواع مختلف مردمی که در پایین کوه وجود دارن به کار بگیرید برداشتی هست که در اون چیزی که عیسی از آیات 17 تا 20 میگه این هست به پایین کوه نگاه کنید اون مردم را با تمام مشکلاتی که دارن میبینید حالا اگه میخواید بخشی از راه حل و بخشی از جواب من برای اونها باشید لازمه که چیزی در مورد کتاب مقدس بدونید لازمه که بدونید چطور کتاب مقدس رو در زندگی مردم به کار بگیرید. یه نفر اینو اینطوری عنوان کرده تفاوت بین روشی که کاتبان و فریسیان و علمای دین در رویکرد به کتاب مقدس دارن با روشی که عیسی برای پرداختن به کتاب مقدس داره میتونه این گونه توصیف بشه عیسی قبل از اینکه شریعت خدا رو در زندگی مردم به کار بگیره شریعت خدا را از منشور محبت خدا عبور میداد و بعد از ظاهر شدن همه تیف های محبت خدا اون رو در زندگی مردم به کار می‌گرفت ایسا البته هرگز این بینش و واقعیت را از دست نمیداد که انگیزه کلام خدا دلیلی که خدا کلام خودش رو به انسان داده محبتش به انسان بوده او رفاه انسان رو مد نظر داشت و تمام شریعت در پرتو اون اصل داده شده بود این همون چیزی که پولس رسول به اون روح شریعت میگه روح شریعت حیات میدهد چون روح شریعت محبت است روح شریعت به ما یادآوری میکنه که تمام شریعت خدا یا کلام خدا از قلب مهربان خدا و از محبت او به انسان سرچشمه میگیره عیسی همیشه اون رو مد نظر قرار میداد پس میتونیم بگیم که او شریعت خدا رو از منشور محبت خدا عبور میداد و بعد اون رو در زندگی مردم اعمال میکرد فریسی ها و کاتبین و علمای دینی این کار رو نمی کردن. اونها آیات رو به سوی مردم پرتاب میکردند اونها کلام خدا رو میگرفتن و به طور شریعتی اون رو در زندگی مردم اعمال میکردند پولس میگه اون میکشه شریعت مکتوب میکشه فریسیان محبت خدا رو فراموش کرده بودند که انگیزه کلام خدا بود اونها شریعت مکتوب رو در زندگی مردم به کار میگرفتن و اهمیتی نمیدادند که آیا به اونها کمک میکنه یا آسیب میزنه از یک جهت عیسی در آیات 17 تا 20 دو چیز اظهار میکنه اولا اون اینو میگه چیزی که آمده هم تعلیم دهم و چیزی که در این خوشا حالها تعلیم دادم و چیزی که ضمن به کار گرفتن این خوشا حالها تعلیم خواهم داد موافق کلام خدا هست البته اینجا عیسی به عهد قدیم شریعت و انبیا اشاره میکنه در ایام عهد جدید اونها به عهد قدیم اینطور اشاره میکردند عیسی میگه من نیامدم که شریعت و انبیا رو منسوخ کنم آمدم تا اونها رو تکمیل کنم کوچکترین حرف و یا نقطه ای از تورات را لغو نخواهم کرد. من نیومدم که چیزی از کتاب مقدس کم کنم. اگه بدونید من چی تعلیم میدم، کوچکترین حکم از احکام الهی را نقض نخواهید کرد و به دیگران هم تعلیم نخواهید داد چنین کند. و فرمانی این که اینجا هست توجه کنید، هر کسی که کوچکترین حکم از احکام الهی را بشکند و یا به دیگران تعلیم دهد که آن را نقض نمایند در پادشاهی آسمان. استاد فرد خواهد بود و اما هر کسی که از فرمانهای شریعت خدا اطاعت کند و آن را به دیگران نیز تعلیم دهد در پادشاهی که از آن صحبت می کنیم بزرگ خوانده خواهد شد. جمله پایانی این پاراگراف جایی که او شروع میکنه معلمین مذهبی و رهبران مذهبی اون روز رو به چالش می‌کشه. او به شاگردانش میگه بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشه به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد به عبارت دیگه او میگه مادامی که پارسایی شخص شما بسیار فراتر از این رهبران مذهبی نباشه نخواهید فهمید من چه تعلیمی میدهم در حقیقت مرا درک نخواهید کرد چون به درستی به من گوش نکرده عیسی ای. ایسا داره اینجا اینطور اظهار میکنه که هیچ چیزی در تعالیم او نیست که مقایر با روح شریعت و انبیا باشه اگه به انبیاء مراجعه کنید و به موسی توجه کنید و روح هر چیزی رو که موسا گفته درک کنید چیزی که عیسی به شما تعلیم میده مقایر با روح تعالیم موسا نیست اما دومین مطلبی که عیسی اظهار میکنه اینه که تعالیم او الزامن موافق با رهبران مذهبی اون دوره نیست به عبارت دیگه او داره میگه من هیچ تضمینی به شما نخواهم داد که چیزی که تعلیم میدم در تناقض با رهبران مذهبی نباشه اون دست شما که در مطالعه و بررسی انجیل یوحنا با ما بودید احتمالا یادتون میاد که عیسی چه گفتگوی طولانی و خصمانه‌ای با اون رهبران مذهبی داشت. اون گفتگوها در واقع در همه اناجیل برای ما توصیف شده، مخصوصاً در انجیل یوحنا و همینطور در انجیل متا عیسی گفتگوی طولانی و خصمانه‌ای با اون رهبران مذهبی داشت چون نظراتش بسیار با اونها متفاوت و متناقض بود. اما نظرات او مخالف با کتاب مقدس نبود چیزی که به نظر میرسه او در این پاراگراف میگه اینه حالا قبل از اینکه به این فکر کنید که تعالیم منو در تمام روابط خودتون به کار بگیرید مخصوصا در زندگی همه اون کسانی که با تمام مشکلاتشون در پایین کوه جمع شدن لازمه که چیزی در مورد کتاب مقدس بدونید هر چیزی که من به شما تعلیم میدم خارج از کتاب مقدس نیست اما چیز دیگه‌ای هست که به اون سنت میگه اون بر مبنای تفسیرهای متفاوتی هست که از کتاب مقدس میشه و یا حتی بسیار فراتر از تفسیر اونها از کتاب مقدس میره. اون تنها نظرات شخصی اونهاست و عیسی اینجا میگه چیزی که من به شما تعلیم خواهم داد تا حدود زیادی در مغایرت با سنت ها, سنت ها وقتی اون را از نظر این رهبران مذهبی بررسی کنید بر مبنای دو چیز هستند. اونها موسار موعظه میکردند و تعلیم میدادند. اما در شش پاراگراف بعدی در متا باب پنج خواهیم دید که عیسی با اونها موافق نبود. با روشی که اونها تعلیم موسی رو تعبیر و تفسیر می کردند و به کار می گرفتند موافق نبود. عدم توافق جدی بین عیسی و رهبران مذهبی در مورد تفسیر و کاربرد تعالیم موسی وجود داشت. و اما بعد فراتر از شریعت خدا و یا شریعت موسی این رهبران مذهبی مانند بسیاری از رهبران مذهبی امروزی برای خود یک کتابی داشتن. به این کتاب تلموز می گفتند. در اون کتاب قوانین و شریعت های زیادی هستند که اونها فکر می کردن تفسیر و کاربرد کتاب مقدس هستند، اما در واقع اینطور نبودند. در مرقس باب هفت و باب پانزده، عیسی به شدت با رهبران مذهبی در این مورد مخالفت میکنه. یادتونه در مرقس باب هفت او گفت، مثلا موسا فرمود، پدر و مادر خود را احترام کن و هر که به پدر و یا مادر خود ناسزا بگوید، سزاوار مرگ است. اما شما میگویید اگر کسی به پدر و یا مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کرده ام، دیگر اجازه نمی دهید که برای پدر و یا مادر خود کاری کند. به این ترتیب با انجام رسوم و سنت هایی که به شما رسیده است کلام خدا را خونسا می نمایید. شما از این قبیل کارها زیاد می کنید. به عبارت دیگه اونها معتقد بودند که اگر شخصی تصمیم بگیره فریسی بشه، مجبور نیست که از والدین سال خورده خودش مراقبت کنه. عیسی گفت موسا چنین چیزی ننوشته. این در کلام خدا نیست. این بخشی از سنت های شما در حالی که سنت شما مقایر با کتاب مقدس هست اما این سنت هستند که زندگی شما را اداره می‌کنند. و از این رو اونها رو به شدت توبیخ کرد. او گفت وقتی شما سنت خود را بالاتر از کلام خدا قرار میدید، کلام خدا رو می‌کنید. اگر سنت‌های شما مهمتر از کتاب مقدس باشه، هیچ ارزشی نداره. این رهبران مذهبی این کار رو می‌کردند و بنابراین گاهی مشکلاتی پیش میومد و عیسی با تعبیر و تفسیر اونها از شریعت خدا یا شریعت موسی و کاربرد اون در زندگی مردم موافقت نمیکرد. اما گاهی اظهاراتی میشد که عیسی اشاره میکرد اون اظهارات در کلام خدا وجود ندارن. اونها فقط در سنت‌های رهبران مذهبی وجود داشتند. و عیسی میگفت که قویاً با اونها مخالفه پس میبینید که اینجا عیسی رهبران مذهبی رو به چالش میکشه او همینطور به شاگردانش میگفت حالا گوش کنید اگه واقعا نزد من اومدید و در کلام من خواهید ماند تا حقیقتی رو بدونید که من برای تعلیم اون اومدم خواهید فهمید که هر تعلیمی که من به شما میدم هیچ تناقضی با روح شریعت و انبیا یعنی تورات نداره اما انتظار نداشته باشید که با رهبران روحانی هم تناقض نداشته باشه این اشخاصی که رهبران مذهبی شما شدند من همیشه با اونها موافق نخواهم بود در زمینه این تعلیم بزرگ او به اونها میگه اگر میخواهید نمک روی زمین و نور جهان بشوید لازمه نه تنها کلام خدایا شریعت و انبیا رو درک میکنید لازمه که بفهمید چطور از شریعت و انبیا استفاده بکنید چطور شریعت و انبیا رو در زندگی مردم پای کوب به کار بگیرید اولین باری که اینو دیدم در نتیجه مطالعه معایزه سرکو و خواندن انجیل های متا لغا و مرقص بود. هرگز فراموش نمی کنم چطور خداوند به من نشون داد که وارد شدن در روح شریعت چقدر اهمیت داره. روح شریعت همان محبت خداست برای رفاه حال انسان. یادم میاد که مأموریت مشاوره ای داشتم با زنی که مشکل طلاق بسیار پیچیده ای داشت. ما کمی بعد به مسئله طلاق خواهیم پرداخت چون به عیسی در متا باب پنج به اون اشاره خواهد کرد اما یادمه که خداوند به من نشون داد عبور دادن کلام خدا از منشور محبت خدا قبل از بکار بردن اون در زندگی های مردم یا مشکلات مردم چقدر اهمیت داره بعد از پایان جلسه مشورتی با اون خانم البته الان قصد ندارم تمام جزیات اون جلسه رو براتون بگم اما بعد از جلسه آخرین جمله او این بود. شبان اگه امروز به جای نشون دادن محبت خدا به من منو توبیخ می کردی ممکن بود وقتی به خونه برگشتم خودکشی کنم هرگز فراموش نمی کنم که چقدر از خدا تشکر کردم که اهمیت نگاه کردن از منظر محبت خدا رو به من نشون داد که وقتی کلام خدا رو در زندگی و مشکلات مردم به کار می گیریم، از دیدگاه خدا به شرایط نگاه کنیم چون محبت خدا روح شریعت خداست باید این نکته مهم را همیشه به خاطر داشته باشیم که قبل از به کار گرفتن کلام خدا در زندگی مردم اون را از فیلتر محبت خدا عبور بدیم. وقتی کتاب مقدس رو در مشکلات مردم به کار می گیرید، اگر آیات کتاب مقدس رو به سر مردم بزنید میتونید اونها رو نابود کنید. فریسی ها و رهبران مذهبی این کار رو می‌کردند. به اون زنی فکر کنید که اونها کشان, کشان نزد عیسی آوردن، و زیر پای او انداختند فکر کنید اونا گفتن موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند اما تو در این باره چه میگویی؟ یا به اون مرد در کنار حوض در بیت صیدا فکر کنید کسی که به مدت 38 سال لنگ بود شفا یافت وقتی اونها دیدند که او درست در مقابل معبد بسترش رو بر دوش گرفته و میدوه یک کلمه هم در مورد واقعه معجزه آسا و شادی بخش و حیرت انگیزی که این مرد شفا یافته بود و در حال راه رفتن بود حرف نزدند اونها گفتن هی آقا داری قانون رو نقض میکنی. اونها بیشتر نگران اون بودند که یکی از قوانین اونها داشت نقض میشد. من گمان میکنم که این کاملا نادیده گرفتن روح شریعت هست. عیسی گاهی مانند همین مورد عمداً قانون سبت اونها رو نقض میکرد تا اینکه بتونه سر صحبت رو با این افراد باز کنه و به اونها بگه گوش کنید خدا اول قانون سبت رو نگذاشت و بعد انسان رو خلق نکرد که از اون قانون پیروی کنه. خدا اول انسان رو خلق کرد و به خاطر رفاه حال انسان چون انسان رو دوست داشت اصول سول سبت رو به او داد. اگر این دیدگاه رو از دست بدید، واقعا دیدگاه بسیار ضعیفی از کتاب مقدس خواهید داشت. چیز دیگری که باید در زمینه این پاراگراف بسیار مهم ببینیم آیه ی بیست هست و چیزی که ایسا در مورد ادالت میگه. آیا تا حالا به اهمیت ادالت در تعالیم عیسی توجه کردی؟ در دو مورد از هشت خوشا او به ادالت اشاره میکنه. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان ادالت زیرا ایشان سیر خواهند شد. او نگفته در توفیق یا کامیابی روحانی، کسانی که گرسنه و تشنه کامیابی یا شادی یا کمال هستند. اینها چیزهایی هستند که واعظین ممکنه امروزه خیلی در موردشون صحبت کنند. عیسی گفته خوشا به گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا ایشان سیر خواهند شد اگر اشتیاق شدیدی برای عدالت داشته باشید عیسی گفته سیر خواهید شد بعد عیسی در اواخر خوشا گفته ها گفت خوشا زحمتکشان برای ادالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است آنها به زحمت می‌افتند و آزار میبینن، نه به خاطر اینکه به دیگران دشنام میدهند یا چون آدمهای ساده لوحی هستند و در ضمن میخوان انجیل رو در زندگی مردم به کار بگیرند بلکه به خاطر زندگی پارسایانه آنها به خاطر اینکه ادالت رو دوست دارند وقتی مسئله به جایی میرسه که آیا چیزی درسته یا غلط و کسانی که در اشتیاق ادالت هستند و از ادالت سیر شدهاند و پر از ادالت هستند کاری رو میکنن که درسته و یا از چیزی جانبداری می میکنن که درسته اونها به این خاطر رنج خواهند کشید بعد کمی جلوتر در این تعالیم خواهیم دید که عیسی در باب 6 آیه 33 میگه شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. اون وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. در نیمه دوم باب شش، او تعلیم عظیمی درباره ارزش ها و اولویت ها خواهد داد. وقتی او درباره ارزش ها و اولویت ها با ما صحبت میکنه، خواهد گفت بذارید بگم چی باید اول باشه. ادالت، پادشاهی خدا و ادالت او. چیزی که اول باید در اولویت های خود بطلبید ملکوت خدا هست یعنی خدا پادشاه شما بشه که این نقش خدا در زندگی های شماست و در همون متن تقریبا بنظر میرسه که او توضیح میده منظورش از اون چیه عیسی میگه اون وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد و چیزی که او به شما نشون میده درسته بذارید او زندگی های شما رو کنترل کنه این باید اولویت شماره یک شما باشه ارزش شماره یک. در باب شش، عیسی به ما میگه مراقب باشیم که پارسایی خودمون رو در مقابل دیگران به عمل نیاریم که توسط اونها دیده بشی وقتی شما این تعلیم رو که به اون موعظه سر میگیم مطالعه میکنید توجه کنید که مفهوم ادالت چقدر مهمه عیسی در زمینه این پارسایی یا ادالت به شاگردانش و به ما خواهد گفت که بین ادالت و پارسایی کاتبان یا معلمین شریعت و فریسی‌ها با عدالتی که من اومدم تعلیم دهم فرق هست تفاوت واقعا در چی بود؟ من فکر میکنم عیسی تمامی این تفاوت رو در یک کلمه خلاصه کرده اونجا که به اونها فرمود ای ریاکاران او غالبا رهبران مذهبی و فریسیان رو اینطور خطاب میکرد ای ریاکاران او اینجا در بالای کوه داره میگه یک نوپارسایی هست که ریاکارانه است. کلمه ریاکار در زبان یونانی دقیقا به معنای صورتک هست در اون ایام در تئاترها، هنرپیشه‌ها غالباً هایی بر چهره می‌ذاشتند تا شخصیتی رو به تصویر بکشن. حالا این برای تئاتر بر روی صحنه هیچ اشکالی نداره. اما عیسی داشت میگفت که این نباید در زندگی روحانی شما هم دیده بشه. ادالتی که شما دارید نباید از نوع ماسکی باشه که در روزهای یکشنبه بر چهره می‌گذارید. شما نباید در مورد پارسایی دروغ و ریاکار باشید. پارسایی شما باید حقیقی باشه. اما عیسی غالباً میگفت که پارسایی فریسیان و کاتبان و علمای دینی ریا است. پارسایی اونها سمیمانه نبود. اون ماسکی بود که اونها بر چهره می زاشتن. روش دیگری برای گفتن همان چیز این بود که پارسایی اونها ظاهری هست، نه درونی. پارسایی اونها فقط در بیرون بود. در درون خبری از پارسایی نبود. باز هم در مرقص باب هفت و متا باب پانزده گفته شده که عیسی برای خوردن غذا با این افراد بر سر سفره نشست. رهبران مذهبی آداب شستشوییی داشتند که طی اون آستین هایشون رو بالا میزدند و دستهایشان را میشستند. همونطور که دکترهای جراح آستین هاشون رو بالا میزند تا قبل از جراحی دستشون رو بشورند. و تعلیم انجام این کار در کتاب مقدس نبود بلکه این جزء سنت های اونها بود. اونها از عیسی انتقاد کردند چون عیسی وقتی بر سر سفره نشست اون آداب شستشو رو به جا نیاورد عیسی میگفت ای ریا کاران شما بیشتر به ظاهر علاقمند هستید تا به درون آیا نمیدانید که بخش مهم انسان انسان بیرونی نیست این انسان درونی که اهمیت داره آیا نمیدونید که قسمت مهم انسان ظاهر و وضعیت جسمانی او نیست بلکه بخش درونی و وجود روحانی که اهمیت داره پولس رسول بعدها در دوم قرنتیان چهار پنج وقتی درباره انسان بیرونی و انسان درونی صحبت میکنه این رو توضیح میده او میگه این امکان هست که انسان بیرونی از بین بره اما در حالی که انسان بیرونی از بین میره این امکان برای انسان درونی هست که هر روز تازه بشه عیسی گفت که ارزش واقعی در انسان درونی هست این بخش از انسان هست که روحانیه این بخش از انسان هست که ابدیه این بخش از انسان هست که جایی تا ابد زندگی خواهد کرد و این بخش از انسان هست که انسان بیرونی رو کنترل میکنه. کنه. بنابراین اون بخش از وجود شماست که باید نگرانش باشید. انسان درونی شما، نه انسان بیرونی. پارسایی کاتبین و فریسیان بیرونی بود، ظاهری بود. اما ایسامی گفت از درون آنها مانند گورهای سفید شده هستند که این یک تعارف نبود. اونها مانند گورهایی بودند که پر از استخانهای انسانهای مرده بودند که چیز فاسد و وحشتناکی هست. و یک بار به اونها گفت که اونها مانند گورهای بینام و نشان هستند. این امکان هست که شما در گورستان قدم بزنید و اگر گوری نشانی نداشت از اون عبور می کنید و حتی نمیدونید که متعلق به کی هست. عیسی داشت به اونها می گفت که به لحاظ درونی و روحانی اونها مردند. روحانیت اونها فقط ظاهری بود مثل یک نمایش بود. پس پارسایی آنها ظاهری بود و عیسی می گفت که باید پارسایی پارسای فریسیان افقی بود اون فقط برای ظاهر سازی بود عیسی در متا باب شش میگه اونها در گوشه خیابان ها سر چهارراها ها و نزدیک ظهر وقتی خیابان خیلی شلوغ بود اونها سر چار راه ها دعا میکردند تا اینکه مردم فکر کنن اونها خیلی مذهبی هستند اما عیسی میگفت دعای آنها در واقع خطاب به خدا نبود بلکه اونها خطاب به مردم کوچه و خیابان دعا میکردند مسئله او مربوط به فریسی و باجگیر رو به خاطر میارید؟ فریسی و باجگیر برای دعا به معبد رفتن و فریسی در جای بلندی ایستاد و عیسی میگفت او برای خودش دعا میکرد. او در واقع با خدا صحبت نمیکرد. او داشت با مردم توی معبد صحبت میکرد یا مردم توی کنیسه. این امکان هست که انسان پارسایی ریاکارانه داشته باشه. درست همونطور که اونها داشتند. پارسایی اونها فقط به خاطر انسان بود. رهبران مذهبی اون دوره سر زهر شیپور مینواختند و وقتی اونها برمیگشتند که ببینند شیپور برای چیه اونها با حالتی که جلب توجه کنه سکه ای در کاسه گدایی مینداختند و عیسی می گفت ای ریاکاران وقتی دعا می میکنید مانند ریاکاران نباشید آنها دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابان ها بایستند و دعا بخوانند تا مردم اونها را ببینند یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتن. پارسایی نباید افقی باشه. به عبارت دیگه، اون باید عمودی باشه. وقتی در هر کدوم از انواعیل به عیسی نگاه می کنیم، می بینیم که او به شدت با رهبران مذهبی مشاجره می کنه. و اینجا در بالای کوه او این رو به وضوح برای شاگردانش بیان می کنه. عیسی می گه حالا گوش کنید. اولا اگر می بخشی از راه حل من و بخشی از پاسخ من برای این مردم باشید، باید بدونید که چگونه از کتاب مقدس استفاده کنید. شما قبل از اینکه آیات رو به کار بگیرید باید اونها را از منشور محبت خدا عبور بدید یا قبل از اینکه شریعت خدا رو در زندگی مردم اعمال کنید باید اون را از منشور محبت خدا عبور بدید و بعد لازمه که بفهمید چیزی که من میخوام به شما تعلیم بدم کاملا در توافق با کتاب مقدس هست، صد درصد اما در این حال باید بفهمید که اون چیزی که من به شما تعلیم خواهم داد در توافق با تعالیم رهبران مذهبی نیست. به این دلیل که شش پاراگراف بعدی با چنین چیزی شروع خواهد شد. آنها به شما چنین میگویند اما گوش کنید ببینید من به شما چی میگم و یا گفته شده و یا مدت قبل به مردم گفته شده و او از رهبران مذهبی نقل قولهایی می و بعد می بذارید من حقیقت رو به شما بگم. دنباله این درس رو در هفته آینده با هم، ادامه خواهیم داد شما را به داستان پرفز خداوندمان ایسای مسیح میسپارم دوستان من با این درس خیلی به چالش کشیده شدم و امیدوارم شما هم مثل من به چالش کشیده شده باشین ما باید مراقب باشیم که فقط عیسی مسیح و تعالیم کتاب مقدس رو پیروی کنیم نه سنت های مذهبی انسان رو اما برای تشخیص این مسئله ما باید کلام خدا رو مطالعه کنیم و از روح اون بخوایم که به ما تعلیم بده دوی ما اینه که این درس ها به شما کمک بکنه تا در ایمان و تعهدتون رشد بکنید و پیروان وفادار خداوندمون عیسی مسیح باشین و این حقایق رو در زندگیتون به کار بگیرید اطمینان حاصل کنید که بتونید جلسه آینده هم در ادامه این درس ها با ما همراه باشید حالا تا برنامه بعدی فیض و آرامش پدر آسمانی ما شما رو پر کنه و به شما برکت بده و روح اتحاد خودش رو به شما بده. باشد که برکات اون به فراوانی بر شما و خانواده شما قرار بگیره.